آیا اونایی که خون به دل علی کردن علی رو نمیشناختن آیا واقعا ما اگر میگیم السلام که یا اول مظلومن قصب حقو این مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام از کسانی است که چون نمیشناختن علی کیه و ظلم کردند یا گرفتار منیت و هوای نفس شدند آقا دومی مجروع شد افتاد تو بستر، اومدن پیشش، امیر فرستاد پیشش، دقت کنیم شب قدره، امیر فرستاد پیشش، فرمود میخواستی خلافت کنی کردی؟ میخواستی حکومت کنی حکومت کردی حالا داری میمیری میدونی حق میدونی حق با منه بیا منبر برو در این لحظات آخر عمر برای اینکه جلوه جلو تفرقه امت اسلامی گرفته شود و حق بر مردم روشن بشه بگو از پیغمبر شنیدی حق با عدیه مردم از گمراهی در بیان من تزمین میکنم تو بهشتی بشی از این بالاتر خلافت میخواستی کردی حکومت میخواستی داشتی دنیا تو که گرفتی حالا که داری میمیری داری میبینی و میدونی من حقم و میدونی اگه من بگم تزمین میکنم بهشت بری بهشت میری بی برو منبر بگو گفت انار ولل آر من حاضرم آتش جهنم را تحمل کنم و این آر است که خودم ما بشکنم میدونه علی حق است وی خودم رو نشکنم شب قدر اومدیم خودمون بشکنیم آقا لذا امشب وقتی گردن و کج می اعتراف به این بکنیم اما اونایی که می علی چه مقامی داره اونایی که می تا شکست دلی در حریم اولیای دین نیابند اونا اصحاب خاص سمیر مؤمنین بودن امشب خیلی هاشون من جمله اصفق ابن نباته سعت ابن سوهان غمبر اینا کمیل اینا متوجه بودن که امیر ماه رمضان امسال حالش یه جور دیگریه مرتب از مرگ میگفت آقا از اول ماه رمضان هی hey, زمزمه جدایی و دیگه ممکنه بین شما نباشم و دیگه ممکنه من خیلی علی رو شما نبینید و این اصحاب خاص حضرت هی hey, با هم درد دل میکردند چی شده مولا امسال اینجوری میگه روز سیزدهم رمضان بود یه روز تو مسجد کوفه مولا بالای ممبر داره خطبه میکنه یه دفعه رو کرد به امام حسن حسن جانم چند روز از رمضان رفته بابا جون سیزده روز بعد رو کرد به امام حسین میخواد نظرها رو جلب کنه بابا جون چقدر از ماه رمضان مونده؟ در 17 روز مونده یه دستیم محاسنم و بارکشون کشیدن فرمودن خیلی نمونده که این محاسنم به خون سرم خذاب شود مردم یه نگاهی به همدیگه کردن. هر شبم خونه یکی از بچه ها و بستگان و اصحاب و یاران افتاری میرفتن تا شد شب نوزدهم رمضان امشب خونه اون ام مکلسمه دختر خیلی خوشحالی میکنه. حالا بابا امشب اومده خونه من سر بابا خیلی شلوغه معمولاً یا داره سوالات مردم جواب جواب. یا مشغول خدمت رقابت که امور مسلمینه یا گرفتاری های دیگه حالا امشب بابا اومده خونم از صبح داره خودش آماده میکنه سفره افطاری رو آماده کرد یک کمی نانو و یک کمی شیر و یک کمی نمک رو سر سفره گذاشت مولانا نماز مغرب رو خوندن یه نگاهی به سفره کردن دخترم کی دیدی بابا چند رنگ غذا بخوره شیر و بردار من با نان و نمک افطار کنم بعد از افطار هی اومد زیر آسمان تو حیات هی hey, آسمان رو نگاه میکنه هی hey, زمزمه میکنه اما کلسون میگه دلم به شور افتاد بابا جون امشب که خونه مایی چرا حالت منقلبه دخترم خیلی نمونده بعد اومد کنار اتاق یه ای لحظه استراحت کند سر به زانو گذاشت اندکی چورتش برد. فوری چشم رو باز کرد. با یک خنده و سرور خاصی اومو کلسوم دوی جلو. بابا جان یه لحظه خوابتون برد. ولی خیلی خوشحال شدی. بله دخترم جدد رسول خدا رو در خواب دیدم. چی بود بابا جان؟ من به جدد شکایت کردم. گفتم یا رسول الله میدونی امت با من شکر. چقدر دل علی به درد اومده که حاضر به پیغمبر درد دل شکایت از امت رو بکنه اما خب بابا جون خوشحالیتون برای چیه جدت فرمود علی نفرین کن نفرین کردی بابا بله چی گفتم خدای علی رو از این مردم بگیر جدد فرمود به زودی به من ملحق میشی منس که نفرین علی مستجاب شده دیگه چیزی نمونده پاسی از شب نگذشته بود علی حیمی اومد تو حیات و آسمان نگاه میکرد نزدیکی های اذان صبح شد دخترم میخوام برای نماز به مسجد برم ام کلثوم میگه قلبم از جا داشت کنده میشد بابام دیشب حالش منقلبه. اوزا اوزای خاصیه برخی از اصحاب خاص حضرت که اسم بردم بودن اینه باهی تو کوچه ها کمین وای میستادن اون شبم دیدند تو کوچه های کوفه ولوله احساس خطر کرده بودند ولی بناس دعای علی مستجاب بشه علی آمد از آن گفت آخرین اذان علی را فضای کوفه شنید آخرین مناجات علی را فضای کوفه شنید اومد تو مهراب عبادت ایستاد نماز را اقامه کرد جمعیت پشت سرشون رکعت اول رکو تمام شد سر به سجده بردن دوبار فرق علی قبل از این شکافته شده بود یه بار در جنگ آهد شمشیر به فرق علی فرود آمده بود بار دوم دو در جنگ خندق امراد نعبدالات شمشیر به فرق علی زده بود این بار سوم علی وقتی سر را سجده برداشت ابن ملجم شمشیری را که هم آلود کرده بود هم اونقدر تیز کرده بود بود. وقتی سر مولا بالا می شمشیر هم فرود آمد فرق علی همون جایی که دوبار شکافته شده بود چنان شکاف برداشت که خون فضای مهرب رو کرد، علی داخل ما به زمین افتاد فریادش بلند شد قوز تو برب کعبه منها اخرق نا و فیها نوید ایداکم و منهان و خرجاکم طرتا اخر جبرائیل <سؤال> میاد آسمان زمین داد داد ان ادم به خدا منحدم شد ارکان هدایت و سما قتل علی یالمرتضا قتل او اشل اشل یه یک بغ زینب دید از آسمان صدای کشته شدن الی به گوش میاد سراسیم آمد دم در جمعیت ریختند داخل مسجد علی رو روی گلیمی گذاشتند چهار طرف گلیم رو مثل برانگم گرفتن به طرف خانه بیارند، همین که در خانه رسیدند علی فرمون نگهداری داری چرا زینبم تحمل این حالت رو نداره علی جد کرملا کجا بودی؟ اون وقتی که زنیده بالای <سؤال> تل زیرمی آمد این جمعیت که اونه قتلگارو گرفتن نیزه دارا با نیزه میزنن شبشیر زلابا شبشیرم نمیکنه، کنن که نیزه و شبشیر ندارن دامن ها برسنگ از بالای قتلگه سنگ میزنن اینجاست که شاعر زبان حال زینب رو بیان میکند از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین از حرم تا قتلگه میخوام چشم در مصیبت ابی عبدالله در کنار مصیبت امیرالمؤمنین المومنی عشق بور باشه کشمی که برای مامو سنگریه کرده دعاش به استجابت نزدیک است از حرم تا قتل گه. زینب صدا میزد و سنگ دست و پا میزد